از بلندای آسمان نگارشی کوتا بر دورنمای تاریخ اسلام همگام با قافله تاریخ من شیفته تاریخم و همیشه با اشتیاق فراوان آن را مطالعه می کنم در دنیای افکارم پیوسته با مردان تاریخ و وقعه تاریخی زندگی می کنم و همیشه آرزو دارم که کاش این حوادث را با چشم خیش می روز غرق همین افکار بودم که ناگاه خود را در جایگاه بلند یافتم که با تلسکوپ بزرگ به زمین می نگریستم. با تعجب زمین و مردم آن را متفاوت از آن چی می شناختم دیدم. مسجد را پر از نمازگزاران یافتم و دیدم احکام شریعت پیاده می شوند. این سو و آن سو نگریستم. نه و فهشائی را مشاهده کردم و نه شراب و قماری به منطقهی که درختان خرمایش سر به فلک کشیده بودند و مسجد سادهی داشت که عبر از نور و برکت بر آن سای افگنده بود متمرکز شدم دانستم که مدینه شهر پیانبر صلی اللہ علیه و سلم است منازلش ساده و اکثر از خشت ساخته شده بود اما سفیران دولتهای بزرگ و فرزندان پادشاهان را که مسلمان شده بودند در آنجا جای افتم و دانستم که این شهر با همهی سادگیش بر جهان حاکم میراند و خراج ایران و روم بسوی آن سرازی است. شهر بیدون محکمه و زندان در شهر گشتم ولی محکمه و زندان ندیدم با خود گفتم پس آرزین کجا می روند و مجرمان در چی جای نگهداری می شوند دیدم مرد بالباس های پی نزده اما با حیبت و وقار در مسجد پیانبر نشسته است و دو نفر بدون هیچ تشریفات نزد او بداوری آمدند و گفتند ما با هم نزای داریم بین ما به عدالت حاکم کن و ستم مکن و ما را براه درست راهنما. قاضی در کمال آرامش شکایت را شنید و به مدعی گفت باید دلیل و شاهد بیاوری ورنه مدعی علیه باید قسم بخورد مدعی چند شاهد عادل آورد که با صحت ادعای او شهادت دادند و قاضی بنافع او حکم کرد و در چند لحظه دوسیه ختم شد و هر دو با رضایت از حکم شریعت بران شد به خیش رفتند گفتم اینها دیگر به وکیل و محکمه نیاز ندارند دیدم در به منازل در شب باز است و بیت المال در حال که همان روز خراج ایران به مدینه رسیده بود، پلیس و نگهبان ندارد تاج کسرا که هزاران دینار ارزش داشت، در میان غنائم به چشمی خورد این تاج گرانبه ها به دست سرباز فقیر افتاده بود، و او آن را به امیر لشکر سپرده و امیر آن را نزد خلیفه فرستاده بود ادهی را آوردند که مرتکب دزدی شده بودند حکم قطده است در موردشان اجرا شد با خود گفتم اینها به زندان نیز نیاز ندارند به خانه ها سرزدم دیدم زندگی بیالایش و مطمئن دارند که غبار حسد، کینه، هرس، و تمه آن را بیرنگ نساخته است. آنها نیازمندند ولی دیگران را برخواد ترجیح میدهند. همسایه هدیهی را برای همسایه خود میفرستد و بعد از آن که هدیه چندین خانه را دور میزند دوباره به خانه اول برمیگردد. قوی حق زعیف را نمیخورد، و بزرگ برکوچک ستم روان نمی دارد. خلیفه و امیر با مهربانی و شفقت با مردم برخورد می کند. گویا در جایگاه پدرشان است. مردم نیز به آنها احترام میگذارند. خیرخواهشان هستند و از آن فرمان میبرند. آبدان روز و سواران شب به اردوگاه رفتم شنیده بودم که نظامیان همیشه از نظر اخلاق و دینداری از دیگران فاسدترند اما در اینجا لشکر نیز متفاوت بود سربازان آبدان شب بودند که صدای قرآن و مناجاتشان گوشها را نوازش می داد. و سوار کاران روز بودند که خیل ماهرانه لشکر دشمن را سربنیست می سختند به خیش پابند بودند همدیگر را به امر و از بدی من می کردند نبرد، اطفال، زنان و افراد مسن را نمی کشتند کشتزارها و معابد را ویران نمی کردند و نسبت ناموس مردم پاک دامنی اختیار می کردن. گفتم جای که لشکریان اینگونه باشند حال آبدان و زاهدان چی باشد از دیدن این مناظر دانستم که اصر خلافت راشده است و این هم مشت نمونه از خروار از مدینه تا دمشق از آن جایگاه کمه پایین آمدم دیدم اوزا تغییر کرده و پایتخت از مدینه به دمشق انتقالیفته است قصرهای برفراشتهی دیدم که پرده های زیبای بران آوزان شده و دیوارهایش با پارچه های نفیس پوشیده شده اند. ارتفاع ساختمان مساجد بسیار بلند و دارای مناره‌های آسمان‌خراش و مملو از نمازگزاران بود مجالس علم را پر است طلاب یافتم در حال که شیوخ احادیس پیامبر را نقل می‌کردند و مردان می‌نوشتند و حفظ می‌نمودند مردم را در طبقات مختلف مشاهده کردم. گروه زاهدان آبد و برخ طالب علم بودند و طبقه دیگر خوشگزرانها بودند. آثار آزادی و رفاه را مشاهده کرده و دیدم مردم در ثروت و مقام و شرف متفاوتند. قسمت از حدود شرعی به اجرا در می آیند. و به بخش از احکام عمل می شوند علما و متدینین دا و طلبانه به اصلاح امور می پرداختند و مردم هم اطاعت می کردند کسه آشکارا مرتکب فسق نمی شد و برگناه اصرار نمی ورزید عموم مردم به اهل دین احترام میگذاشتند. خلیفه و امیر با همه رفاه، طلبی و خوشگذرانی امام خطیب و همنشین مردم بود. حکومت مسلمانان از شرق تا مرزهای هند و از غرب تا سواحل اقیانوس اطلس گسترش یافته بود. و از مرز شرقی تا سرحد غربی مملکت اسلامی حد اقل 5 ماه راه بود. با خود گفتم شاید این عصر عموی هاست و من در پایان قرن اول هجری هستم. از پرورش عصب ها تا جنگ سگ ها. سپس کم پاین آمدم. شهر جدیدن آباد شده را در کنار دجله دیدم، که ظاهر مخلوط از عرب و عجم داشت و در میان عرب، فارسی، هندی و ترک مشاهده می شد. کاخ خلیفه مانند کاخ های شاهان عرب توسط ترک ها محافظت می شد. کاخ های وزرا و فرماندهان همین وضعیت را داشتند. پادشاهان در کاروانهای مخصوص باشان و عظمت خاص بیرون می آمدند. دیدم بعض مردم با قیمتهای بسیار بالا کبوتر می خرند و به پرورش و بازی با آن مشغولند. ها هم خروسها و سگها را با هم جنگ می و انواع از بازی و سرگرمی را مشاهده کردم و با خود گفتم این همه از سبب فراوانی پول و آمیختن با اقوام دیگر به وجود آمده است. دفتر قاضی را مملو از آریزین یافتم و دیدم که حل یک شکایت چند روز طول می کشد. زندانها پر از مجرمان است. اما در همین حال مساجد از نمازگزاران پر بود و طالبان علوم دینی، در مدارس موج می‌زدند و مجالس وذ با شنوندگان آباد بود مردم متوجه می‌شدند از ترس عذاب بیهوش می‌شدند و از منکرات توبه می‌کردند هر جمعه بسیاری از اهل ذمه مسلمان می‌شدند با خود گفتم هنوز قلب‌های خود را از دست نداده‌اند و همچنان دین بر روح آنان حکم می راند مردان را دیدم که از دنیا بریده اند و به بادشاهان و هدایایشان شان بی توجه مردم از ممالک دور خدمتشان می و از آنها استفاده می فهمیدم که دولت دین قوی از دولت ماده است جا میباری به بارخراجت به من می رسد.خلیفه بزرگترین دولت روی زمین را دیدم که به ابر میگوید هر جا می خواهی به بار و خراجت نزد من میآید. با خود گفتم این بغداد پایتخت حکومت عباسیان است و شاید من؟ در قرن سهوم هجری به سر می برم. قرطبه و از زهره در این وقت مناسب بود نگاه به خلیج تنگه جبل و تارق به در کنار ساحل شهر آباد با ساختمان های بلند کاخه های وسه باغه های زیبا خیابان های هموار چشمه های جوشان، قلعه های مستحکم، مساجد زینتی یافته و مدارس معتبر دیدم. و بیاد آنچی در تاریخ از شهر قرتبه خونده بودم افتادم و دانستم که این شهر شانزده میل طول و 6 میل عرض دارد. و در آن می هزار قصر و منزل، چار سد هزار دوکان، هفتصد مسجد، 900 همام و چهارصد هزار و سیصد مخزن آب وجود دارد و جمعیت آن بالغ بر یک میلیون نفر است. در شهر پارکهای وسیح، خیابانهای فرس شده با سنگ، خیمه های کرهگزاران از گرمای خورشید به آن پناه میبرند، وجود دارند. بازارها را پر از مجتمعهای تجاری، با وسائل گران قیمته که از شهرهای دورده است به آنجا آورده شده بود و مسافرخانه های برای گردشگران و تجار مشاهده کردم در کنار قرطبه شهر کوچک دیدم که در زیبایی بر روی زمین مانند نداشت گفتم شاید این شهر از زهرا باشد که در تاریخ معروف است و من در قرن چارم هجری در زمان پادشاهی عبدالرحمن در اندلوس یا اسپانیای امروزی بسر می برند. عصر سلجوقی ها نگاهم را از غرب به شرق انداختم. حکومت قوی و گستردهی را با پایتخت تخت نیشاپور دیدم که بر خراسان ایراق و ایران حکم می راند. و پادشاه آن آلپ ارسلان با اروپائیان در سرزمینشان می پادشاه مسیحیشان را اسیر کرده و مجبور به پرداخت جزیه می کند. مدرسه نظامی بغداد را آباد و پررونق یافتم که شخصیتهای چون امام غزالی آن مشغول تدریس بودند، و دولت سلجوقی مخارج آن را می پرداخت همردیف آن مدرسه نظامیه را در نیشاپور مشاهده کردم که امام الحرمین جوینی به تدریس در آن می پرداخت چشمم با این مناظر خنک شد و برای دولت سلجوقی دعا کرد لشکر سلیب دیر نگذشت که دیدم اروپاییان با نشان صلیب کشورهای اسلامی را غارت می کنند و از هر سو هم لور می شون. پادشاهان اروپا هم پیمان شدند و لشکریان بزرگ آوردند و قدس را گرفته و به قدر مسلمانان را کشتند که کوچه های قدس پر از خون شد و اصبه ها آن فرو رفتند بیشتر شهرهای سوریه و فلسطین را اشغال کرده و مصر و عراق را تهدید کردند و آرزوی فتح حجاز را در سر می پرورانند و گستاخیشان به حد رسید که یکی از فرماندهانشان قسم خورد تا به پیکر رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه احانت کند چون این سحنه ها را مشاهده کردم به دولت سنجوقی در نیشاپور چشم دوختم و گفتم کجایان پادشاهان که در دل اروپا می جنگیدند اما متاسفانه دیدم که این حکومت در سال 532 هجری از بین رفته و مسلمانان مشغول بازی و سرگرمی هند و یا به شدت با هم درگیرند. دیدم هیچ کس به خطر صلیبی ها توجه نمی کند پس بر اسلام ترسیدم و گفتم باید با اسلام خداحافظی کرد امروز برای پیامبر انتقام می گیرم در عالم یعص و ناامیدی دیدم سلطان نوریدین زنگی و سلطان سلاح الدین ایوبی با میدان مبارزه با اروپاییان آمدند و با شدت آنها را سرکوب کردند صلاح الدین قاضی به مبارزه با آنها ادامه داد تا در سرزمین تبریه آنها را به سختی شکست داد و برنس را که به پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین کرده بود گردن زد و گفت امروز به خاطر پیامبر انتقام می گیرم. سلاه الدین قدس و شم را از دست مسیحیان پس گرفت و چهرهی مسلمانان را در جهان سفید کرد و این پیروزی بود که همه پیروزی ها در مقابل آن ناچیز به حساب می آیند اگر شنیدی مغول شکست خورده است باور مکن کامی فرود آمدم بغداد را که چند لحظه قبل زیارت کرده بودم دیدم توسط مغول کاملا تخریب شده و جوی های خون جاری است اثر کشتگان مناره ساخته و خلیفه المستعصم را با فجیع ترین شکل کشتند کتابخانه نفیس بغداد را در دجل انداخته اند که گاه آب آن از رنگ کتابها سیاه و گاه با خون کشتگان سرخ می شود اگر من قبلا با ساحل دجله آشنا نبودم با هیچ وج این چهره جدید بغداد را نمی شناختم دیدم مغولان مانند ملخ به جهان اسلام هجوم آورده اند و شهرهای بزرگ و پایتخت های شرق را و ایران و مساجد را تخریب کرده اند خانه ها را سوزانده اند و اهل آن را سر بریده حکومت خارزمشاه را در خراسان تکت که کرده و کار خلافت عباسی را از بغداد یک سره کرده اند. مسلمانان به حد احساس ترس کرده اند که اصلا شکست مغول را باور نمی کنند، و این گفته بر سر زبان هاست که اگر شنیدی مغال شکست خورده باور مکن بار دیگر بر اسلام ترسیدم و گفتم شاید این آخرین لحظات عمر اسلام باشد. ناگهان به حیرت دیدم که مغولان گروه گروه به اسلام میگروند و کسانی که مسلمانان را شکست داده بودند در آنها حزم میشفتند دانستم که این دین جاویده است و هر فاتحه را مغلوب می سازد. محمد فاتح و فتح قسطنتونیه اما با گذشت زمان کار مسلمانان بزاف گرائید و تنبلی در اطراف جهان اسلام فراگیر شد. چیزی که باعث روشنی چشم شود دیده نمی شد. جز جرقی در آسیای صغیر که آنجا عثمان خان مجاهد دولت مستقل تشکیل داده بود. بعدا قهرمان نامی عثمانی محمد ثانی استانبول قسطانتونیه پایتخت جهان مسیحیت را در سال 858 فتح و آن را استانبول پایتخت خود قرار داد. جانشینان محمد پادشاهان قدرتمندی بودند که تا به اعماق اروپا پیش رفتند. اندلوس اسلامی به اسپانیای مسیحی مبدل گردید. دوباره به اندلس نظر انداختم. دیدم قرطبه از دست مسلمانان بیرون شده و مساجد به کلیساهای نصارا تبدیل گردیده که به ایوز آزان صدای زنگ کلیسا از آنجا بلند می شود. مردم ظاهر عرب اما دین نصرانی دارند. تمدن شبیه عربی است اما زندگی کاملا جاهلی. انا لله گفتم و سخت گریستم امواج کافر غرناطه اسلامی را نیز در نوردید و پادشاه مسیحی فردیناند بر آن غلبه کرد و از بیلا آن را بتصرف در آورد ابو عبدالله آخرین پادشاه بنیل احمر را دیدم که کلیدهای پادشاهی خیش را تحویل می و با چشمان عشق بار از غرناطا و قصر الهمرا خداحافظی می کند و به مراکش گوچ می نماید. دیدم سرزمین های اسلامی اندلوس رنگ مسیحی به خود می و احراب به زور مرتد می شوند. مدارس تعطیل و کتاب ها سوزانده می شود. در زمان کوتا، در سرزمین که اسلام هشت قرن کامل بر آنها حکومت رانده بگونه مسیحی می که کس پیدان نمی نام اسلام را به زبان آورد با الله تعهد نمودم این سحنه های در دهنده مرا وحشت زده کرد ترسیدم و به خود آمدم خود را روی بسترم یافتم و با خود گفتم شاید الله خیر مرا می خواهد. او اوزای جهان اسلام و انوای مسلمانان را به من نشان داد اصر خلافت راشده و اصر انهتات را دیدم و به من نمایاند که کافر چیگون مسلمان و غالب چیگون مغلوب و مسلمان چیگون مرتد می شود و چیزان بر اثر غفلت مسلمانان سرزمین های اسلامی به کشورهای مسیحی تبدیل می شود بلند شدم و قسم خوردم همیشه سرباز اسلام و نگهبان مرزهای آن باشم تا حوادث اندلست دوباره در جهان تکرار نشود